زن به محلی که جای پرده چشمهایش بود نزدیک شد نگاهی با آن انداخت و رد شد دو مرتبه برگشت دستش را از کمرش برداشت و سرش را به عقب انداخت ناگهان خوشگهی با سرانگشتش گردی را که قاب تابلو باقی گذاشته بود لمس کرد رو کرد به من رنگش بریده بود چشمهایش می درخشید. مثل اینکه که میخواست بگوید دارید مرا فریب می دهید؟ چه نیرنگی میزنی؟ تابلو کجاست؟ اما به او رو ندادم منتظر بود که حرفی بزنم من خون سرد بودم دست هم را گرم میکردم و به شعله کبود رنگ بخاری مینگریستم این لحظه پرتگاه بود او باید به حرف بیاید آقای نازم مثل اینکه یا یک پرده خالی است بله خانم ممکن است مگر پرده استاد رو از این تالار بیرون هم میبرند؟ بله میبرند و گهگاهی هم گم میشود. مشتری هم پیدا میکند. این پرده ها رو میفروشید؟ همه کاری ممکن است. چطور ممکن است؟ چنین انتظاری نداشت. استحابش به حدی بود که آنچه در صورتش پنهان بود نمایان شد. چهرهش قمزده به نظر آمد. من خون سرد و بیعتناء بودم. ای خانوم همه چیز ممکن است استاد خیلی بیش از این پرده نقاشی داشته بیش از آنچه که شما الان ملاحظه میفرمایید میبرند میخورند کسی به کسی نیست بالاخره یک پرده زیادتر یا کمتر برای دولت فخیمه چه فرقی می کند. این پرده اینجا را فروختند شاید ممکن هست که در یکی از کلاس‌ها باشد و یکی از شاگردان مدرسه دارد از روی آن کپیه می‌کند. هیچ جایتان هست که کدام پرده است؟ نه خاطرم نیست مسلم این زن برای خاطر پرده چشمهایش به حرف خواهد آمد باز هم مدتی به پرده ها نگریست از من رو برگرداند از نو متوجه آثار نقاش شد در مقابل پردهی که دو متر و نیم طول و یک متر و اندی ارز داشت ایستاد این پرده از کارهای عالی استاد بود مرد خوشبونی قوی حیکلی که لباس برتن دارد در وسط تابلو دیده می شود. در مقابل آینه ایستاده و کلاه دارش را با دست راست پایین می کشد. صورت بزرگ و پار از چین و چورکش در آینه پیداست. قریب سلس پرده را پالتوی بلند و خوشبروش مرد گرفته. کنار آینه روی میز کوچکی اصهای کلوفتی تکیه دارد. سیگارش، در زیر سیگاری دود می کند طرف راز هیکل نحیف زنی و 45 ساله دیده می شود که دارد از اتاق بیرون می آید لباس بر تن این زن گریه می کند قیافه زن موقع و دلنشین اما اما انگیز است لچک سیاهی بر سر کرده و زیر گلو گرده زیر گرو گله زده است و روی لچک یک کلاه فرنگی زنانه از حسیر سیاه دیده می شود منظره این زن با لشک و کلاه و به حدی مصحه است که اگر آدم فقط این قسمت تابلو رو ببیند خنده‌اش میگیرد مثل اینکه یک زن هر جایی می‌خواهد تقلید درآورد اما در قیافه زن شوخی و تمسخر خوانده نمی‌شود. زنگوی از موم ساخته شده و چیزی نمانده که آب شود و وارود زیر پد روی چارچوب نوشته بود جشن کشف حجاب این را که آدم میخواد دیگر خندش نمیآید. کمی فکر میکند. چه اهمیتی مرد برای جشن قائل است؟ با کمال اطمینان دارد خود را برای کار مهمی آماده میکند. اما از قیافه زن وحشت و استراب هویداست. مینا که دارد خودش را مزهک مردم میکند. چاره چیست؟ باید رفت. دستور داده همه باید در جشن کشوری جواب شرکت کنند. بر زنهای خودشان را همراه ببرند مرد این امر را کاملا عادی میداند مگر کسی توقع دیگری دارد اما بیچاره زن مدتی فرنگی است در برابر این پرده ایستاد حد زدم که واقعا زن ناشناس به عمق فاجعهی که در این پرده به زبان گویا بیان شده پی برده بود داستان دردناکی را از این پرده حکایت می کند این طور که کشوه هجاب نمی کنند. این زن باز هم چادر به سر خواهد کرد و اگر هزار بار او را به مجالس کشفه هجاب ببرند باز هم همان است که بوده استادی و مهارت شگفت آوری در تجسم و قیافه مرد که فقط در آینه دیده می شود به کار رفته قیافه آرام است هنوز صورت زن خود را با لباس تازه که بتن کرده با لچک و کلاه فرنگی ندیده زن خجالت میکشد شام دارد از اینکه با این رخت حتی خودش را به شوهرش نشان بدهد گویی دارد آن را میان چیز خارداری میکشند و همکنون خراش هایی را که بدن لختش را ریش ریش میکند میکشد. آن باز منتظر درد شدیدتری است فرنگیس پرسید چرا این زن زیر کلاه فرنگی لچک بسته گفتم یادتان نیست دستور داده بودند که زنها حتما با کلاه فرنگی به امهانی بیایند اما این زن نمیتوانست موهای سفید خودش را به مردم نامحرم نشان بدهد خوب نگاه کنید از آن کلاقی های قدیمی است که به سرش بسته است برای اینکه که اقلن گردن موهای سفیدش را بپوشاند. فرنگی از کنار پرده هم رد شد چندین این از آقا رجب به دیوار نصب بود من همه آنها را قاب کرده بودم فرنگیس نگاهی به من انداخ من پیش درسی کردم و گفتم خانم این نوکر را استاد بوده عجب این عجب نزدیک بود که اختیار راست کف من برو باید نزدیک بود بگویم توف به روی کسی که عدا در می آورد خودداری کردم به خود گفتم صبر کن این نقاب از صورت تو هم می افتد. به لخره به حرف خواهی آمد بلند گفتم بله خانم این پرده هرکدام هر کدام داستانی دارند هر کدام از افکار و احساسات و محله ای از زندگی اصال را حکایت می کند حیف که شما فقط همین امروز را وقت دارید و دیگر نمی توانید به دیدن این نمایشگاه بیایید و الا من با کمال میل حاضر بودم که کمی برای شما توضیح بدهم خیلی محتشکیان می شدم بله همینطور از که میفرمایید. من فقط همین امروز در تهران هستم و فردا از تهران می روم. من مکرر در روزدامه ها شخ کارهای استاد را خوانده بودم و هیچ وقت فرصت نکردم که آنها را ببینم باز هم شروع کرد به ویل گفتن و اگر جلواش را نمی گرفتم باز یک کتاز میدان می و دور می دویدم توی حرفش هیچ تا به حال کارهای استاد را ندیده بودید سال من برایش تازگی داشت مخصان که چو در سیلاب به پرگوی افتاده بود فرصت تفکر نداشت چند لحظه مکس کرد اما این زن قدرت عجیبی داشت و میتوانست, میتوانست به تناسب وضعی که میخواست جلوه سازد، ریافهش را عوض کند اما همین یک لحظه سکوت همین چینی که بر پیشانی انداخت همین که چشمهایش را تنگ و باریک کرد به من خالی کرد که درون او به این آرامی که می نماید نیست تا از کلمات روان و خنده صورتش نمی شد مکتابی استنباد کرد در جواب من گفت چرا؟ چند سال پیش هم روز اینجا آمدم اما خیلی سرسری تماشا می گمان می که پرده های دیگری هم اینجا بوده است که حالا نیست مثل اینکه که شما قیافه فراش مدرسه رو هم به خاطر دارید چون وقتی تشریف آوردید متوجه شدید که فراش ما عوض شده است این پرده که ملاحظه میفرمایید تصویر آقا رجب نوکر استاد است که بعدها فراش مدرسه شد آن دفعه که اینجا تشریف آوردید آقا رجب زنده بود و تنها کسی که از زندگی استاد اطلاع کامل داشت او بود که دیگر نیست چند ثانی مکس کرد و بعد آرام ملایم گفتم و یک زن ناشناس که منده و او هم پیدایش نیست دیگر موقع آن رسیده بود که من آخرین تیرهای ترکش خود را رها کنم او سوار و آماده به حمله ایستاده بودم خیره به او می و می کوچکترین ارتعاش های روح او را احساس کنم زن ابروهایش را در هم کشید لبانش را نیمه باز کرد میخواست دروغی بخندد خنده در لبانش خوش شد دیگر نمی توانست من را کند و به بازی بگیرد اما زبونش هنوز در اختیارش بود گفت عجب داستان شیرینی و هیچکس این زن را نمیشناسد شناسد هیچ کس جز من این زن را نمی شناسد دست همراه رو بخاری بلند کردم و هم مالیدم و آهسته به سوی فرنگیز رفتم و چشم به هایش دوختم رنگم پریده بود این بار افسون چشم او من را گرفت زن ناشناس یک بار دیگر قوقعی از دست رفتش را جمع کرد بلند خندید اما صوت خنده دیگر تنین نداشت داشت وامی زد از من می ترسید می از من دور شود اما قدم من سریع‌تر بود و او می‌کوشید دو دستی نقابی را که به چهره ای بود نگه دارد در این حال تعجب او دیگر آشکار بود چه میگویید؟ فقط شما این زن را می با او رو به رو هم شده اید؟ یک قدم دیگر هم به تف... طرفش رفتم دیگر فاصله ما از هم از یک متر کمتر بود زنداش خود را می باخت آرام و شمرده درهایی که روی هل... هر کلمه تکیه می کردم با او گفتم بله با او رو رو هم شدم چیزی نمانده بود بگویم با او رو به رو هستم اما دیدم زن هنوز از خود اراده دارد اراده بخش داد از من رو برگنداند نگاهش را متوجه تابلوها کرد و رشته سخن را به دست گرفت میخواست مطلب را عوض کند خود سالی که از من کرد میرسند که متزلزل شد و میخواست بداند که کی سر او را فاش کرده است پرسید پس نوکرش زن را به شما معرفی کرده. هیچ او را به من معرفی نکرده. من خودم او را شناختم. چند وقت است که نوکرش مرده. سه سال پیش او فوت کرد. دارایی استاد در دست او بود و آنچه باقی ماند، وقف اطفال آقا رجب است. گاهی اینجا می این, این پرده ها هم مال آنهاست. نه خیر، اینها دولت خریده است. دیگر چیزی هم باقی نماند و شاید تا چند سال دیگر اصلا همه آنها از به این برود. همین الان هم بعضی از این, بعضی از این ها کپیه است. شاگردان استاد میاند و به اسم که میخواهند از روی آنها بکشند تابلوها ها را میبرند. اصر را میفروشند و کپیه را برمیگردانند. کسی هم که نیست اصر را از بدل تشخیص دهد. جای تأسف است. دیگر حالا موقعش بود که من بگویم عجب بالاخره برای این زن ناشناس هم چیز قابل تحصفی در دنیا وجود داشت نگاهی به ساعت انداختم مقصودم این بود که زن خیال کند عجله دارم و میخواهم او را چه زودتر دست به سر کنم و پیکار خود بروم پرسید آقای نازم شما عجله دارید؟ تیرم به هدف کن مقصودم برآورده شد دل پس شده بود با او کمی میدان دادم. بداخلی فهمید که ای در دست من است. خیال نکند که زنجیری او هستم و میتواند با من همانند دیگران رفتار کند. گفتم نه خیر، خانم ای ندارم. ولی خب ما هرچه باشد زندگی داریم. باید به کار خودمان من هم برسیم. ببخشید من شما را خیلی مطرد کردم. نه خیر، اهمیت ندارد. تماشا کنید. بار دیگر متوجه تابلوها شد. هنوز نصف اتاق باقی بود. در مقابل پرده خانه های بیش از دو سه دقیقه ایستاد و تماشا کرد. ناگه هم برگشت و باز به یکی از ترهای مدادی آقا رجب نگاه دوخت من نفهمیدم که این چه وضع تماشای تابلوهای نقاشی است. توقف او در بعضی از تابلوها به چه غصب بود؟ در واقع به عمق مطالبی که استاد می میکرد پی میبرد یا اینکه ساختگی میخواست خود را خبرو و فهمیده نشان دهد شاید هم این پرده ها را میشناخت و خاطرات گذشته در تخیلش رژه میرفتند